بخت از دهان دوست نشانم نمیدهد دولت خبر ز راز نهانم نمیدهد از بحر بوسه‌ی لبش جان امیدم اینم همی ستان و آنم نمیدهد مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست یا هست و پرده دار نشانم نمیدهد زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین کانجا مجال باد وزانم زانم نمیدهد چندان که بر کنار چو پرگار میشدم دوران چو نقطه رهن میانم نمیدهد شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی بدعهدی زمان زمانم نمیدهد گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست حافظ آه و ناله امانم نمی